یازدهمین این عادت ضد تنبلی به فعالیت های کم ارزش نه بگویید بهانه یکی ازمیان می رود حالش را ندارم من از زیادی تعداد آدم هایی که کارهایی را می کنند که به واقع از انجامشان متنفرند شگفت زدم البته همه ما در زندگی کارهای ناخوشایندی داریم که باید انجامشان بدهیم اما در همین حال افتادن به طله انجام کارهایی که برای ما ناخوشایندند و تنها برای رضایت خاطر دیگران انجامشان می دهیم نیز آسان است. در این کتاب درباره اینکه چرا نباید بگذاریم بهانه گوناگون مانع از آغاز کارهای ما بشوند سخن گفتیم. اما گاهی عذری موجه پشت بهانه که برای انجام ندادن کارمان میآوریم نهفته است. اگر شما واقعا نمیخواهید کاری را انجام دهید شاید وقت آن رسیده باشد، که دست از دقدقه انجام آن هم بردارید. اجرای این عادت سختترین بخش یادگیری چگونگی نگفتن به دیگران، مدیریت واکنش آنها در زمانی که در میابند، اولویتهای شما با آنها متفاوت است میباشد. در اینجا به یک پروسه ساده چهار ای برای انجام این کار اشاره می نخست شما باید فعالیت های لازم الاجرار را بشناسید. اینها همان فعالیت هایی هستند که انجامشان بخشی از یک بزرگسال نرمال و متعادل بودن است. اگر بخواهید به چونین فعالیت هایی هم نبگویید، در زندگی به جایی نمی رسید. همه ما کارهایی داریم که باید انجام شوند. پس شما هم باید بپذیرید که هر چقدر هم از این کارها بدتان بیاید، باز هم مجبورید آنها را انجام دهید. تنها نصیحت من در این باره آن است که هر کدام از این فعالیتها را به یک هدف بلند مدت ارتباط دهید. برای مثال، حتی اگر از شستن زرف ها متنفرید، یاد داشته باشید که چگونه انجام این کار در دراز مدت وضعیت ازدواج شما را هماهنگ و سازگار می کند. سپس لازم است که شما درخواست هایی که با اولویت هایتان در تعارض است را به دقت تحلیل کنید. طی برنامه مرور هفتگیتان فعالیت های مهمی که حتما باید انجام شوند را مشخص کنید و اگر درخواست انجام کاری از شما شد که با نتایج مورد نظرتان مطابقت نداشت، شهامت آن را داشته باشید که به این درخواست نه بگویید. سوما که شما باید با مردم درباره راست باشید. و اگر میبینید که خیال انجام درخواست های آنها را ندارید، از همان اول و بلا فاصله به آنها جواب منفی بدهید. صداقت در اینجا بهترین سیاست است. تنها کافیست به طرف مقابلتان بگویید که شما پروژه هایی در دست انجام دارید که بر درخواست او مقدم هستند و به توجه تمام وقتتان نیاز دارند. و شما وقتی برای انجام کارهای اضافه ندارید. معمولا اغلب مردم این مطلب را درک می کنند و کسی هم که توان درک چنین چیزهایی را نداشته باشد بهتر است اصلا در زندگی شما هم جایی نداشته باشد. و در نهایت سعی کنید با وجود اینکه جوابتان منفی است به مکالمه تان لحن مثبتی بدهید. مثلا اگر خودتان نمی به طرف مقابلتان کمک کنید کسی که توان کمک دارد را به او معرفی کنید. اگر هم فکر میکنید که شاید در آینده بتوانید درخواست او را برآورده کنید به طرف مقابلتان بگویید که در فلان تاریخ مشخص به او پاسخ قطعی را خواهید داد. نگفتن باعث نمیشود که شما شخص خودخواهی باشید. این کار تنها از شما انسانی میسازد که اولویتهای خودش را به وضوح درک میکند و هدف روشنی دارد که او را از هر گونه انحراف از مسیر حرکتش باز میدارند. به ویژه که این انحراف حاصل درخواستهای نابجای دیگران باشد.